یکی از جهاتی که اعراز کرد حکومت و خاتمیت و خلافت از مصحف عبدالله بن مسعود برای اینکه مصحف عبدالله بن مسعود حَمّی نداشه و معوذت نداش و نقل به معنا داشت نقل به معنایی که یعنی کلمه رو جای کلمه می‌ذاری و قرآن رو یه جور دیگه درست می‌کنی من می‌گم که اینا همه بسطند بر عبدالله بن مسعود عبدالله بن مسعود اگر هم مثلا از نظر شخصیتی که قطعاً و مودن معتادانه بود شخصیتش اینجوری بود، اونا حاضر نمیشودن یعنی نه در مرأه منظر صحابه بود فقط یک احتمال یکی یعنی. از علمای اهل سنت تا تا اینجا که رسولی من که همیشه فکرم این بود که این که مثلا میگن مصحفشون چنين چنان بوده اینا رو ساختن ایشون یه احتمال داده اتفاقا خیلی هم خوبه به نظر من احتمال او زمینه شده که اینو بگم یه حد یعنی ایشون میگن که یک دعوایی بوده یه آقای عبدالسطان شیخی هست البته از این جهتی آدم خیلی بوده این آقای عبدالسطان شیخ بسیار اون بسیار متتبعه احتمال شد خوبی این آقا این آقای عبدالسطان یک احتمال میده بر اساس یه واقعیت تاریخی. این واقعیت تاریخی هم بترشید نمیگه هست و اون این است که از صدر اسلام دو چیز توی اولی ها یکی در دوره صحابه و یکی در دوره تابعی یعنی بگید دو تاش در دوره صحابه یکیش در دوری صحابه و دوتاش در دوره تابعین مورد اختلاف می شه در کتابت قرآن در دوری صحابه بین صحابه اختلاف بوده که اعوذ بالله و بالله من الشیطان الرجیم رو جُزء قرآن بنام می سران این اختلاف بعدها دست در دوره تابعین هم شکل گرفت سر بسم الله به خاطر که معاویه این کرد و جریان اسلام عموی به این دامن زد که بسم الله را هم جز قرآن بنویسن یا ننمیسن یا بدانم یا ندانم چون از نظر تاریخی فخر هم تصریح کرده دیگران هم گفتن این کسی که در قرآن بسم الله الرحمن الرحیم را حذف کرد ماویه بود کفانا می دوپیرند. چند صحابه به خاطر اینکه خداوند فرموده بود که لا قرءان استعذ بالله در الشیطان اینا بعضیاشون وقتی قران كتبت میکردن من که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بعضی از صحابه مخالفت بودند میگفتن که ننویسید اگر اعوذ بالله من الشیطانه باذن آینده کم کم اعوذ بالله از یعنی استعازه قرآن تلقی میشه عبد الله ابن مسعود از اینا بوده و آقای عبد الصطاح میگه که این ادرس اصلش اینجوری بوده یحق او اتتحوز از در قرآن و بعد که ما وقتی تو رو در نه نه, نه که این یه حکم است، کردنش که و این کردنش از این که فراوان است یعنی اختلاف نسخ قرآن گفته بود و و سلامت و تواتر و غلط و غیر خلافقاتشان که بال العذره من آقا در ثابیت در حدیث که مقصد نقل به معناست تصحیح و تحریف بر اساس در فهمی در بدخانی اعلام ماشاءالله اعلامش ما اون کی احتمالش احتمال خوبیه من یک روزی این را گفتم یکی از شایانگار ما هفته آینده به من دو تا غریبه برای این جمله این آقا میاد کردم و یکی رو از ذهبی یکی رو از طبقات فسق از این دو تا نام بود در ذیل زندگانی عبدالله الله بن مسعود که در اونجا نام شده بود که خان عبدالله الله بن مسعود یهول این کانه یهول هم شما علمان میدهد یعنی همیشه میدهد جردو القرآنه عنه تعوض جردو القرآنه عنه تعوض یکو قرینه بوده که مثلا این موضعش اینجوری بوده این بعد متوجه نشدن و شاید همین شعار این آدم را هم قرینه دانستن و بعد قرینه گرفتن و بعد مردم تمانستن یعنی تو کله ها بندازن که این معوضتی قبول نداشته و من مثلا گفته مصحفش معوضتی نداره این آقای عبدالسطدار شیخ میگه که این مصحفها طریق داره طرق داره یکی از طرق مصحف عبدالله همون طریق است که مصحف عبدالله اگر این آن باشد باید در اون طریق تصریح میشد که این طریق چنین چنانه و بعدش همین اشکال به میکنه کنه همین اینجوری بود بلاخره صحابه ساکت نمیده بسنه